آیا می توان گفت که هر سوره سیاق مشخصی دارد و تمام مقدمات و معخرات تون سوره در راستای بیان پیام خاصه پیام خاص کل سوبر و قرآن کریم هدایته راهنمایی راهنمایی به چیزی که معلم تکن تعلمه با عقل و غول مثلا وقل و اینها اون مسیر ها معلوم نیست و نمیتونه انسان تشخیص بده خودش خدای متعال از طریب قرآنش اون راهها ها رو نشون داده هدایت کرده روح قرآن هدایت هدایت به سمت خوبی هایی که با عقل نمیشه تشخیص داد اما در سوره های مختلف مطالبی مختلفی رو که و پیام‌های مختلفی که در این راستا در راستای هدایت لازمه خدای مطال مطرح کرده هر سوره رو به ظاهر از سوره دیگه تفکیک و جدا کرده و اون به اصطلاح به ظاهر پراکندگی رو در کتاب خودش داره و این یکی از نعمت‌های بزرگه که اول آخرش خیلی به هم ش و متصل مثل این کتاب که ما می نویسیم نیست متبا تبویب شده جا, به جا با زندگی کپ زندگی مردم داره صحبت میکنه. تفاوت هایی که هر ساعتی به ساعت قبل برق میکنه زندگیمون این ساعتی که الان داریم با ساعت روز قبل مثلا و روزهای قبل متفاوته با وجود تفاوت ها صحبت های مختلفی را ایجاد میکنه و مطرح میکنه که ما برامون راه باشه اما روح عمدش و روح واحدش هدایت و راهنمایی به سوی بندگی خدا هست